سیرف انجم این حدیث فرودی رسول الله صلی الله علیه و سلم اصرف بصرک الله صلی الله علیه و سلام بفازله برادر علی بن ابی طالب در مزلفه در ایام حج دختری رو میبینه بعد نگاش میکنه بعد میگه که چشمتو بپوشون یا چشمتو بر بگردون نگاه نا نکن یعنی این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام همین حدیث جریر داریم حدیث جریر داریم که سوال میپرسه از نگاه یهودی یهودی چه شادن به نامحرم بیفته چه دختر به مرد نواح چه مرد نواح به دختر میگه اصرف بصره چه شو تو بپوشون چه شو برگردون نگاه نواح رم نکنی این توصیه الله متعاده در قرآن در سوره نور و یه سی و یه قل المؤمنین یقض من ابصارهم و بعدش میگه با قل المؤمنات اول به مؤمنین میگه مردان مؤمن چه شونو بپوشونن و بعد میگه به زن دختران مؤمن یقض من ابصارین چه شونو بپوشونن از مردان نوحرم من از باب اشاره فقط اینجا میگم نادیده گرفتن این قوانین این دستورات این فرامین چقدر سبب شده که در زندگی ما مشکلات بیاد مشکلات که هیچ بلکه مصیبت ها بیاد مرد میشینه کنار نمیدارم جم تیویه فلان تیویه این کانال و اون کانال فیلم برزیلی و فیلم ترکی و فیلم فلانو میاد نگاه این سریال اون سریال میکنه دختره خشخوشگل و آراسته رو میبینه میبینه که زنش تکراری شده دلش از زنش شسته میشه اون زنه هم میاد نگاه اون مرد میکنه با اون تیپ و قیافه و با اون هیکل شوهر خودش رو میبینه خسته و کوفته با عرق اومده از بیرون اون زنه هم دلش سیر میشه از اون شوهر میگه چه شوهریه اون شوهر به اونا میگن اون فلان ماشین سوارم فلان چیز داره طمع میاره در دل حداقلش نگاهی اینو اونو کردن غیر استمع دلزدی میاره یا الا من چه تعبیر مناسبی داشته باشم دلشکستگی میاره افسردگی میاره دیگری داره من ندارم دیگری فلان اینطوریه غیر از اون ابزار و وسائل اون دیدن ما نگاه نا که سبب میشه که انگیزه شهوانی در ما ایجاد شد ما اصلاح در میگه فلان دلش سیر شده نه. غیر از میگم که دل انسان سیر میشه مثلا زنش براش تکرانی میشه چون زنان خوشگلتر از اون میبینه غیر از این که دنیا هم درش میاد و بی‌اهمیت میشه نسبت به زنش غیر از این قضیه سبب میشه که مثل یک گرگ گیوشه گروسنه که فقط میخواد حمله ور بشه یعنی شهوتش کاری میکنه که یک تبدیل به یک شخصیت خشنی بشه با همسرش به عنوان یک کنیز برخورد بکنه و هیچ اهمیتی بهش نده از یه طرف و بعد با تندی هم باش برخورد کنه چون شهوتش بالاست چون خواستهاش زیاده و نمیتونه به اون خواستهاش برسه صعب میشه که فردا در زن بیفته قناعت نکنه در همسرش بره با این دختر اون دختر ارتباط و هم حتی اون زن ما چقدر از اون زنان خائن داریم که نسبت به همسران خودشون خیانت میکنن و بعد اون زن فاحشه میاد بهانه میاره میگه نه شوهرم بهم به نمیرسه شوهرم از لحاظ جنسی ضعیفه سبحان الله ای زن گمراه ای زن بس تو فروختی رفتی دلتو باز کردی سینتو باز کردی به یک مرد نامحرم تنفروش شدی به خاطر چی به خاطر دنیا به خاطر شهوت نتونستی شهوت نگاه داری این شهوتت از کجا به وجود اومد از اون نگاه نامحرمت از اون راحت گرفتن این نگاهها و آسون گرفتن این مسائل میشنید راحت نگاه تلویزیون میکنی غیر از این نگاه کردن نگاه کنید چه آلودگی های فکری بهمون به میرسه از اون عشق های خرافاتی و دروغین و از اون عشق ها و خیانت ها و میگه چی بهم چی تو این فیلم ها میاد زنه به شوهرش خیانت کرده فلان شده بعد او را میکشه بعد فلانش میکنه مثل فیلم های هندی و فیلم های ترکی همشون همینه عشق کاذب که ای کاش فرهنگ بهمون به میرسوندن نه خیانت یادمون میدن نه بهمون فاحشه یاد میدن، فاحشه کاری یاد میدن، بهمون رضایل اخلاقی یاد میدن، همه اینها هست. اینا باید بهش توجه داشته باشیم و بدونیم چشممون و گوشمون دریچه قلبمون هست. برای هر کسی باز کردیم، وارد قلبمون شدن از اون قلب بیرون انداختن. سخته پس چشو بپوشونیم، گوشو نگه داریم، با هر کسی همسخن نشیم تا شیطان نتونه با اون تیرش در قلبمون ما را اسیره شت کازه به بکنه